دوستای خوبم به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما در حال بررسی مطالبی هستیم که به اعتقاد بعضی ها بزرگترین تعالیم دنیا و بزرگترین تعالیم ایسا هستند که به معزی سرکو شهرت دارند. حقایق روحانی امیقی در این تعالیم وجود دارند که کاربورد وسیعی در زندگی های ما دارند. قلبتون رو آماده کنید. تا چیزی رو که خدا میخواد یاد بگیرید این شما و این معلم ما حکم مکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیست حکم خواهد شد و بدان پیمانهی که پیمایید برای شما خواهند پیمود و چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خودداری یابی یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم تو است ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند آیاتی که خوندیم نخستین آیات باب هفت انجیل متا هستند و این نشون میده که به انتهای تعالی میرسیدیم که در اولین گرده همایی مسیحیان به ما داده شدند. عیسی در سر سرکوه به ما میگه که چطور بخشی از راحلها و جوابهای او برای مشکلات مردم دنیا باشیم. یک بار شنیدم مرد جوانی توی پیاد رو نشسته بود و مرد دیگری از خیابان عبور میکرد و انجیلش رو تکان میداد و می گفت مسیح جواب هست. مسیح جواب هست. مرد جوان به اون نگاه کرد و پرسید خب سوال چیه؟ وقتی شما بدونید سوال چیه، وقتی بدونید مشکل چیه، اون موقع به دنبال جواب و راه حل گردید. اولین گرد همایی مسیحیان با تمرکز بر مشکلات و جواب ها شروع شد. بعد عیسی به ما نشون میده چطور پاسخ و راه حل سوالات و مشکلات باشیم. او در بالای کوه با ما درباره رفتارهای ما صحبت می کنه. او از این صحبت کرده که ما اگر رفتارهای درست داشته باشیم میتونیم در جامعه پذیرفته بشیم. اگر ما ایمان داشته باشیم که روح القدس میتونه اون وقت اون میتونه این رفتارها رو در تجربیات زندگی ما قرار بده. عیسی در مورد نقش ادالت و پارسایی ما در روابطمون صحبت میکنه. او درباره مقررات روابط شاگردان با خدا صحبت میکنه و درباره ارزشهای ارتباط با خدا صحبت میکنه. بخش دوم متا شش تعلیم خارقلاده در مورد ارزشها هست. من این رو به صورت خلاصه بررسی کردم اما می دونم کسانی که علاقمند باشن می در متا شش نوزده تا بیست و به دقت اون رو مطالعه کنن. در پایان بخش تعالیم سر کوه، ایسا بر این تمرکز می کنه که ارزشای واقعی خدا چی هستند و به این منظور میگه شما قبل از هر چیز برای به آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید آن هم وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد چیزهایی که شما نگرانش هستید غالبا اولویت های شما میشن عیسی کمک میکنه که بفهمیم ما یا ما ارزش های خدا رو داریم یا نه بنا به گفته ایسا عیسی اگر میخواهید بدونید ارزش های شما چه چیزهایی هستند قبل از هر چیز رفتارهاتون هاتون رو ملاحظه کنید در تمام طول روز به چه چیزی فکر میکنید اگر میخواهید بدونید ارزش‌های شما چی هستند به نگرانی هاتون فکر کنید تمام طول روز نگران چی هستید اگر می‌خواهید بدونید ارزش‌های شما چی هستند به هاتون فکر کنید تمام طول روز چیکار می‌کنید اگر می‌خواهید بدونید ارزش‌های شما چی هستند به آرزوهاتون نگاه کنید در تمام طول روز دنبال چی هستید اگر می‌خواهید بدونید ارزش‌های شما چی هستند به وفاداری خودتون فکر کنید در تمام طول روز به چه چیزی و یا به چه کسی خدمت می کنید؟ وقتی به همه این چیزها فکر کنید و بر ارزش هاتون متمرکز بشید، باید این ارزش شماره یک شما باشه، نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید. نخست در پی این باشید که مطیع پادشاهی خدا باشید. بذارید خدا شاه شما بشه و نشون بده چی درسته. بعد از اون خدا تمامی نیازهای شما رو رفع می کنه. در متا باب هفت، عیسی اولین همایی مسیحیان رو خاتمه میده. در پنج آیه باب هفت، عیسی در خاتمه تعالیمش به ما میگه متحد باشید که به درون نگاه کنید. یادتونه که عیسی این تعالیم رو با خوشابه به شروع کرد. وقتی عیسی رفتارهای زیبا رو تعلیم میداد، او سعی می کرد ما رو وادار کنه به درون و به خودمون نگاه کنیم. عیسی این همایی مسیحیان رو به همون ترتیب که شروع کرده بود خاطبه میده. او ما رو به چالش میکشه که متعهدانه به درون نگاه کنیم من معتقدم که این متن به ما نشون میده عیسی آدم خوشمشربی بوده برای اینکه تاکید کنه که شاگردان باید متعهدانه به درون نگاه کنن عیسی سوالاتی میپرسه از اونها میپرسه چرا به این نتیجه رسیدید که خدمت شما اینه که دنبال عیبهای دیگران باشید و دنبال پرکاهی در چشم مردم بگردید در حالی که خودتون چوبی توی چشمتون دارید به اونها میگه تا زمانی که چوبی در چشم خودتون دارید، آیا مزهک نخواهد بود که راه بیفتید و بگید خدمت من اینه که بفهمم چه چیزی در زندگی دیگران اشتباهه؟ این نشون میده که شما آدم منتقدی هستید، شخص عیبجویی هستید. من فکر میکنم کنم که این مثل کاملا نشون میده که عیسی طبع شوخی داشته. واقعا کسانی هستند که این مثل برازنده اونهاست. اونها بر دیگران تمرکز میکنند. اونها همیشه همه چیز رو به گردن دیگران میاندازن در حالی که همه میدونن مشکل خود اونها هستن و همه میدونن که بجز خود اونها کس دیگه ای منبع مشکلات اونها نیست این منو یاد مردی میندازه که نزد روانکاوش رفت او کاهوی پربرگ بزرگی روی سرش داشت و سه تا روی کاهو گذاشته بود و یک رشته گوشت خشک شده از هر کدوم از گوشاش آویزون کرده بود وقتی دکتر او را دید دعوت کرد که وارد بشه و از او خواست که بشینه مرد خیلی با احتیاط نشست که تخم از روی کاهو نیفته دکتر گفت میخواید راجب به این صحبت کنیم؟ مرد گفت دکتر می‌خوام راجب به برادرم با شما صحبت کنم حالا خیلیا هستند که نزد روان کاف میان و واضحه که مشکل بزرگی دارن اونها کاهو و تخم مرغ و گوشت نمک زده روی سرشون دارن اما تنها کاری که می‌خوام بکنن اینه که میخوان از کس دیگه ای حرف بزنن عیسی از چنین کسانی دو سوال پرسید. اول از اونها پرسید چرا این همه منتقد هستید؟ و بعد از اونها پرسید چطور میتونید امیدوار باشید که بتونید تاثیر بذارید؟ چطور میتونید به کسانی کمک کنید که پر کاه رو از چشمشون در بیارن در حالی که خودتون چوبی در چشم دارید؟ سخنان بعدی عیسی از روی شوخ گفته نمیشه. عیسی تمثیل خوش مشربانش رو به صورت جدی اینطور بیان میکنه: ای اولان چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیارد با آنگاه درست خواهیدید که پر که را از چشم برادرت بیرون بیاورید در متا پنج وقتی عیسی درباره اهمیت رفتار درست با برادرتون صحبت میکنه او میگه وقتی برای دعا به حضور خدا میاید اگر با برادرتون در آشتی نیستید اول برید و با او آشتی کنید بعد به حضور خدا بیاید اول برادرتون بعد خدا اما او حالا درباره مشکلات شخصی صحبت میکنه. اول چشم خودتون بعد چشم برادرتون. وقتی صحبت از مشکلات رابطه ای هست، یک شاگرد باید اول خودش رو مد نظر قرار بده. باید اجازه بدیم خدا اول با زندگی های ما برخورد کنه تا بعد از اون بتونیم به دیگران در زندگی هاشون کمک کنیم. عیسی بعداً به مشکلات کسانی اشاره میکنه که قضاوت کننده و منتقد هستند. یادتونه که فریسیان شریعتی بودند. شاید عیسی به شاگردانش تعلیم میداده که با فریسیان چطور رابطه برقرار کنند برای خلاصه کردن و تفسیر این تعلیم بزرگ عیسی او میگه اگر با میکروسکوپ به دیگران نگاه کنید احتمالا اونا هم شما رو زیر میکروسکوپ قرار خواهند داد و شما این رو دوست ندارید اما اگر به دیگران با تلسکوپ نگاه کنید اونها هم به شما با تلسکوپ نگاه خواهند کرد و به این ترتیب شما احساس راحتی بیشتری خواهید کرد پس چرا مردم رو زیر میکروسکوپ قرار میدید؟ بعد ایسا جمله ای مثبت بیان میکنه. او میگه با هر ای که وزن کنید برای شما هم با همون پیمانه وزن خواهد شد. اگر اونها رو با یک انگشتانه کوچک محبت کنید، اونها هم به همون ترتیب محبت خواهند کرد. اگر اونها رو به اندازه یک تریلی محبت کنید، اونها هم به همان میزان محبت خواهند کرد. انتخاب با شماست. با هر ای که می خواهید به مردم محبت کنید. اونها هم با همون پیمانه شما رو محبت خواهند کرد ایسا به ما میگه که روابط انسانی یک جاده دو طرفه هست. در این متن عیسیا نمیگه که ما هرگز نباید داوری کنیم این متن با این شروع میشه داوری نکنید خیلی ها همینجا نقطه میذارند و جمله رو تموم میکنند مخصوصا زمانی که میخواهید با گناهان خود اونها برخورد کنید اونها میگن انجیل گفته داوری نکنید اما شما باید این پنج آیه متتاب باب هفت رو با هم بخونید. عیسی میگه نباید داوری کنید. به عبارت دیگه از مردم انتقاد نکنید وگرنه مردم از شما انتقاد خواهند کرد. اما عیسی در ادامه میگه اول خودتون رو داوری کنید. چوب را از چشم خودتون در بیارید. مشکل خودتون را حل کنید. بعد از اون واضحتر تر خواهید دید تا دیگران رو داوری کنید و به اونها کمک کنید. در این متن از کتاب مقدس عیسی میگه به درون نگاه کن. خودت رو اصلاح کن اون چوب رو از چشم خودت در بیار متعهد باش که به درون نگاه کنی چون اگر این کار رو بکنی اگر چوب رو از چشم خودت در بیاری در تمامی روابطت شخص مطمئن نخواهی بود داستانی از دو روانشناس شنیدم که دفترهاشون در یک ساختمان بود اونها با مترو با هم می اومدند و وارد اون ساختمان میشدند و هر روز همزمان وارد آسانسور میشدند یکی در طبقه ششم از آسانسور پیاده میشد و اون یکی همیشه به طبقه دهم ده میرفت این داستان روزها پشت سر هم ادامه داشت یه روز وقتی اونها در آسانسور بالا میرفتند، درها در طبقه شش باز شد اما قبل از اینکه این روانشناس پیاده بشه اون یکی برگشت و به دیگری توهین کرد بعد آسانسور به طبقه دهم ده رفت روانشناسی که بهش توف انداخته بودند صورتش رو پاک کرد و هیچ حرفی نزد پیاده شد و به دفتر کارش رفت روز بعد این ماجرا تکرار شد این داستان چهار روز پشت سر هم تکرار شد صبح چهارم در حالی که اونها به طبقه دهم ده می‌رفتند و او صورتش رو خوش می کرد، مأمور آسانسور گفت آیا شما در این مورد نمی‌خواهید کاری بکنید و اون روانشناس گفت این مشکل او هست. او مشکل داره او به دیگران توف می‌اندازه این مشکل من نیست من شاید مشکلات زیادی داشته باشم اما روی مردم توف نمیندازم. چیزی که این داستان کوچک روانشناسان به ما درباره ناسازگاری یاد میده اینه اگر شما حق باشید و مقبول باشید وقتی کسی روی شما توف میندازه خیلی در امان خواهید بود برای تفسیر عیسی به طور خلاصه چیزی مثل این میگه اگر شما واقعا شخص مطمئن باشید چون میدونید که باید چوب را از چشم خودتون در بیارید از دیگران انتقاد نخواهید کرد و دوچار جنون نخواهید شد وقتی شخصی در امان باشید و کسی بر شما توف کنه دست رو در میارید و میگید دوست من، شما لازمه که از گردن به بالا معاینه بشید. شما مشکلات زیادی دارید. باید کسی رو پیدا کنید که در مورد مشکل توف کردن به دیگران به شما کمک کنه. شما قادر میشید بر این حقیقت متمرکز بشید که این مشکل او هست. اگر شخص مطمئن باشید، اینطور رفتار خواهید کرد. اما واقعا چند نفر از انسانها در چنین امنیتی هستند؟ حالا مثال برعکس برای این رفتار تصور کنید که در بین جمعیتی هستید و میبینید که عده‌ای دارند صحبت می‌کنند. اگر فکر کنید که راجب شما صحبت می‌کنند بدونید که مشکلی دارید. حالا کسانی هستند و باور کنید که خود من دیدم که میشه گفت کاملا روانی هستند و اونا واقعا فکر می‌کنند همه راجب اونا حرف میزنند عیسی به ما میگه که روابط انسانی یک جاده دو طرفه هست بنابراین متعهد باشید که اول چوب را از چشم خودتون در بیارید. متعهد باشید که به درون نگاه کنید. اول چشم خودتون، بعد چشم برادرتون. در خاتمه تعالیمش، عیسی از اونها نظر میخواد. عیسی از ما میخواد که به درون نگاه کنیم. باید واقعا شما رو به چالش بکشم که آیا تعهد میکنید که به درون نگاه کنید؟ آیا تمام سعیتون رو میکنید که با فیض خدا و با تمام نیروتون تعهد کنید که اول چوب را از چشم خودتون در بیارید و بعد پر کاه رو از چشم برادرتون در بیارید؟ این چیزیه که قابل تعمله. در آیت 7 تا 11 باب 7، ایسا این متن بزرگ رو به ما میده. سوال کنید که به شما داده خواهد شد. به طلبید که خواهید یافت. به کوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد و کسی که به طلبت دریافت کند و هر که به برای او گشاده خواهد شد. کدام است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی به دهد؟ یا اگر ماهی خواهد، ماری به دو بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود میدانید؟ چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است، چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال میکنند خواهد بخشید؟ ایسا توجه ها را جلب میکنه و میگه متعهد باشید که به بالا نگاه کنید. ایسا شاگردانش رو به چالش میکشه که با پشت کار به بالا نگاه کنند اونا رو به چالش میکشه که بتلبند و منظورش اینه که مرتبا بطلبند. او شاگردانش رو به چالش میکشه که بجویند. جستن طبیدن با اشتیاقی زیاد هست. ایسا شاگردانش رو به چالش میکشه که بکوبند و مرتبا بکوبند. کوبیدن جستن با اشتیاق هست بعد عیسی به اونها وعده سگانه ای می میده کسی که به دریافت میکنه کسی که بجوید خواهد یافت و هر کسی بکوبد بالاخر خودش رو در مقابل در بازی خواهد دید وقتی که عیسی به پایان تعالیمش میرسه به شاگردانش میگه تا زمانی که تعهد نکنید که به بالا نگاه کنید هرگز بخشی از راه حل من نخواهید بود در آیه 12 متی هفت عیسی خطوای دیگری میده عیسی میگه تعهد کنید به اطراف نگاه کنید اینجا جایی که عیسی به ما بزرگترین تعلیم اخلاقیش رو میده که به اون قانون طلایی میگیم. قانون طلایی آخرین چیزیه که عیسی در اولین گرده همایی مسیحیان به اونها تعلیم میده. در آیه 13 عیسی شروع میکنه به دعوت کردن. تجربه دعوت کردن کسانی مثل بیلی و دیگر مبلغان مسیحی از اینجا نشعت میگیره. عیسی بزرگترین مبلغی بوده که جهان به خودش دیده. در تفسیر و خلاصه آخرین چیزی که قبل از دعوتش یاد داد عیسی گفت: "حالا آقایان به پایین کوه نگاه کنید." آیا اون مردم پای کوه رو می بینید؟ یکی رو انتخاب کنید. اگر سفید هستید، یک سیاه پوست رو انتخاب کنید. اگر سیاه پوست هستید، یک سفید پوست رو انتخاب کنید. اگر یهودی هستید، یک غیر یهودی رو انتخاب کنید. اگر غیر یهودی هستید، یک یهودی رو انتخاب کنید. خودتون رو جای شخص دیگه ای قرار بدید. اگر شما جای اون اشخاص بودید، دلتون میخواست شاگردان بالای کوه چه کاری برای شما انجام بدن؟ وقتی جوابش رو پیدا کردید اون کار رو بکنید این خلاصه تمامی شریعت و نوشته های انبیا این خلاصه کتاب مقدس در روابط انسانی هست. هر چیزی که اگر شما به جای آن شخص بودید و می‌خواستید او برای شما انجام بده برای او انجام بدید این شریعت و گفته انبیا هست. بیایید بر تعالیم عیسی که به قانون طلایی معروف هستند متمرکز بشیم تعالیم قانون طلایی دقیقا اینه با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند اگر ما واقعا این قانون طلایی رو بپذیریم اون تمامی مشکلات رابطهای ما رو حل خواهد کرد اگر شما به عنوان یک شوهر و پدر خودتون رو به جای همسر و فرزندانتون بذارید دلتون میخواد شوهرتون برای شما چیکار کنه اگر شما اون فرزند نوجوان باشید دوست دارید پدرتون برای شما چیکار کنه وقتی جواب سوالتون رو پیدا کردید همون کار رو بکنید این قانون طلایی برای روابط خانوادگی هست اگر شما سفید پوست هستید خودتون رو جای یک سیاه پوست بذارید و از خودتون بپرسید اگر من سیاه پوست بودم دلم میخواست اون مرد سفید پوست برای من چیکار کنه وقتی جواب رو پیدا کردید همون کار رو بکنید تمامی روابط یک جاده دو طرفه است بنابراین اگر سیاه هستید خودتون رو به جای سفید پوست بذارید. بعد از خودتون بپرسید اگر من سفید پوست بودم دلم اون سیاه پوست با من چه رفتاری داشته باشه. وقتی جواب رو پیدا کردید همون کار رو بکنید. این قانون طلایی در روابط بین نجات هاست. خودتون رو جای کسانی بذارید که خوشبختی کمتری دارند. فرض کنید که شما در چنان محیطی به دنیا میومدید جایی که جنگ ها و فقر بیش از اندازهایی وجود داشت. اگر شما هم مثل اونها زندگی میکردید از خودتون بپرسید دلتون میخواست یک مسیحی ثروتمند براتون چیکار کنه وقتی جواب اون سوال رو پیدا کردید همون کار رو بکنید چون این قانون طلایی در روابط بین المللی هست به اعتقاد من واقعاً چیزی که به منظور عیسی نزدیکتر هست اینه خودتون رو جای کسی قرار بدید خواه اونها در کشورهای دوری باشن یا در خیابانهای نزدیک به شما اونها کسانی هستند که به عیسی مسیح ایمان نیاوردند هرگز نجات و به نجات رو تجربه نکردند در واقع اونها به منفی گناه رو تجربه کردند خودتون رو جای اونها بذارید و از خودتون این سوال رو بپرسید اگر شما جای او بودید توقع داشتید که یک متخصص کتاب مقدس یک شاگرد پر از روح عیسی مسیح براتون چیکار کنه وقتی به جواب اون سوال رسیدید همون کار رو بکنید چون این قانون طلایی در خدمات مسیحی هست قانون طلایی آخرین چیزی بود که عیسی بر بالای کوه قبل از دعوتش به اونها تعلیم داد. وقتی قانون طلایی رو تعلیم داد، شاگردانش رو به چالش واداش که متحدان و اطراف نگاه کنند. وقتی عیسی تعلیم قانون طلایی رو به پایان برد، دعوتش رو شروع کرد. آیا تا حالا دعوت او رو مطالعه کردید؟ عیسی اولین گرده همایی مسیحی رو با مطرح کردن این سوال شروع کرد: کجا هستی؟ آیا شما بخشی از مشکلات هستید یا بخشی از راه حل؟ آیا پایین کوه هستید یا بالای کوه؟ حالا وقتی به انتهای تعالیم اولین گرده همایی مسیحی می هم میرسید باز هم با همون چالش روبرو هستید. کجا هستید؟ فقط این بار نیست که کجا هستید بلکه میپرسه آیا هنوز هم پایین کوه هستید یا بالای کوه؟ این دعوت عیسی به کسان اشاره میکنه که در بالای کوه هستند. در بالای کوه شما به طور تمثیلی کلیسای نوپا و ماهیت کلیسا رو میبینید. به عبارت دیگه ایسا میپرسه شما به عنوان شاگرد کجا هستید؟ چه نوع شاگردی هستید؟ با سه پاراگراف زیبا عیسی تعالیم اولین گرده همایی مسیحیان رو به قضاوت میذاره. او شاگردانش رو با این گفته به چالش میکشه. دو نوع شاگرد وجود داره، شاگردان بسیار و شاگردان اندک. شاگردان بسیار فکر می کنند که راه حل و پاسخ شدن راهی آسان هست شاگردان بسیار فقط خطوط کمترین مقاومت رو پیروی می کنند اونها فکر می کنند که راه حل و جواب سوالات شدن با دری فراخ شروع میشه و اون در فراخ در مقابل راهی آسان و عریض قرار داره اما اگر به اونها نگاه کنید خواهید دید که اونها هرگز راه حلها و جوابهای من نخواهند شد بعد از اون عیسی میگه خواهید فهمید که در بین شما تعداد اندکی هستند و اونها بسیار کمند که میفهمند برای نور و نمک جهان شدن باید از دری باریک و راهی باریک عبور کرد که این راه باریک راه سخت انضباط و شاگردی هست اگر اونها رو نگاه کنید خواهید دید که اونها راه حلها و جوابها میشن آیا شما جز افراد بیشمار هستید یا جز معدود کسان کجا هستی و به این ترتیبی سأ اولین گرده همایی مسیحیان رو پایان میده. بعد از اون ایسا میگه دروغ و حقیقت وجود دارند، گرگ در لباس میش وجود دارند. این امکان وجود داره که ایسا از اون رهبران مذهبی صحبت میکنه. حالا واقعیت اینه که او داره با افراد بالای کوه صحبت میکنه یعنی به طور کاربردی میشه گفت که با مردم توی کلیسا صحبت میکنه. آیا فکر می کنی توی کلیسا کسانی هستند که دروغین هستند ؟ البته که هستند. در مسئله گندم و کرکاس ایسا به ما میگه که باید انتظار داشته باشیم که افراد دروغین رو در کلیسا ببینیم در مسئله گندم و کرکاس به ما گفته شده که اجازه بدید اونها با هم رشد کنند روزی وقت درو خواهد رسید و گندم از کرکاس برای داوری جدا خواهند شد اما به ما اخطار شده که الان نمیتونیم علفهای هرص رو از مزرعه بکنیم گندم نماد شاگردان حقیقی هست و کرکاس نماد شاگردان دروغین اما هر دو با هم رشد میکنند بعضی ها رشد واقعی میکنند و بعضی ها نه بنابراین عیسی این چالش رو پیش روی شاگردانش قرار میده تعداد بیشمار و تعداد اندک وجود دارند شاگردان حقیقی و شاگردان دروغین وجود دارند شما کدام یک هستید بعد از اون چالش عیسی میگه کسانی هستند که حرف میزنند و کسانی هستند که عمل میکنند این سراغاز بخش طولانی از دعوت او هست. بسیاری در اون روز به من خواهند گفت سرورم، سرورم، ما کارهای فوق العاده ای انجام دادیم و من به اونها خواهم گفت از من دور ای بدکاران. هرگز شما را نشناختم. حالا این مربوط به کسانی هست که ادعا می کنند که شاگرت هستند. این اشخاص فکر می کنند که کارهای ای انجام می دند. اما عیسی میگه ای کار گران بدکار. شما هرگز اراده خدا را انجام ندادید. کسانی هستند که حرف میزنند و کسانی هستند که عمل میکنند. دیتریش بانهوفر گفته تنها کسانی که ایمان دارند متی هستند و فقط کسانی که متی هستند ایمان دارند. و کس دیگه ای اونو اینطور عنوان کرده. چیزی که واقعا بهش ایمان دارید انجام میدید و بقیه فقط حرفهای شریعتی هست. بازم بذارید تأکید و تکرار کنم که به پای کوه نگاه کنید عیسی میگه آیا مردم پای کوه رو میبینید؟ اونها به حرفای مذهبی نیاز ندارن. حرفای مذهبی مشکل اونها را حل نمیکنه. تنها راهی که میتونید راه حل و پاسخ نیازهای انسانی باشید اینه که انجام دهنده اراده خدا باشید نه فقط سخنگو. بعدو تعالیم و دعوتش رو در بالای کوه با این مثل به پایان میبره. عیسی میگه این زندگیه. دو خانه کنار هم قرار گرفتن. توفان شدیدی بر هر دو خانه میوزه. یکی از اونها در طوفان متلاشی میشه و دیگری به جا میمونه. حالا عیسی چه چیزی رو مثل میزنه؟ عیسی میگه اگر تعالیم مرا را شنیدید و از اون اطاعت کردید مثل اون خانه‌ای هستید که ویران نمیشه چون بر صخره بنا شده. اما اگر تعالیم منو را شنیدید و از اون اطاعت نکردید اگر به اون عمل نکردید مثل خانه‌ای هستید که هیچ بنیانی نداره و بالاخره در توفانها نابود خواهد شد. برای سومین بار عیسی شاگردانش رو با این سوال به چالش میکشه. شما به عنوان شاگرد کجا هستید؟ ما میتونیم به اون چالش دعوت بگیم. دو مرد در روی یک نیمکت قرار دارند. شما کدام یک هستی؟ و به این ترتیب عیسی اون گرده همایی رو به پایان میبره. زمن خلاصه اولین گرده همایی مسیحیان، میخوام که توجهتون رو به بعضی چیزها جلب کنم. اولا تأکید شدید همه این تعالیم رو بر ادالت ملاحظه کنید. در سراسر تعالیم بالای کوه، عیسی گفته ما باید گرسنه و تشنه ادالت باشیم. ما باید به خاطر ادالت رنج بکشیم. ما باید در ادالت نسبت به دیگران برتری داشته باشیم. باید ادالت رو به کار بگیریم و به دنبال ادالت باشیم. و اون رو در اولویت خودمون قرار بدیم. اون ها رو ملاحظه کنید تعجبی نداره که عیسی دعوتش رو با گفتن این به پایان میبره تعداد بیشمار هستند و تعداد اندک وجود دارند شاگردان دروغین و شاگردان حقیقی وجود دارند کسانی هستند که حرف میزنند و کسانی هستند که عمل میکنن. عیسی شاگردانش رو که در اولین گرده همایی مسیحیان شرکت کردند با این سوالات عمیق به چالش میکشه. آیا شما جز افراد بیشمار هستید آیا جز معدود کسان هستید؟ آیا جز شاگردان دروغین هستید یا جز شاگردان حقیقی؟ آیا جز کسانی هستید که حرف میزنند یا عمل میکنند؟ چیز دیگهی که میخوام ملاحظه کنید اینه که عیسی این گرده همایی رو به همون ترتیبی که شروع کرده به پایان میبره و به نقطه عطو یک مسیحی شدن تمرکز داره آیا شما یک مسیحی هستید؟ این چالش نهایی هست کجا هستید؟ آیا هنوز پای کو هستید؟ هنوز بخشی از مشکلات هستید، هنوز یک علامت سوال هستید، یا با حضور در کلاس مثل این یا کلیسا دست کم اقرار می کنید که بخشی از پاسخها هستید. وقتی عیسی اون نقاط عطف را عنوان می کنه، این نقطه عطفی مربوط به مسیحی شدن هست. بر تأکیدی که در این گرده همایی بر چالش های تأثیر شخصیت های خاص بر این دنیا شده توجه کنید. بعد بر شخصیت هایی تمرکز کنید که در خوشا حال ها به تصویر کشیده شده بر اون خوشا حال ها نگاه کنید همراه با دعا در هر کدوم از اونها تعمل کنید و ضمن اون از خودتون بپرسید آیا اون رفتار در طرز فکر من شکل گرفته آیا اون رفتار در تجربیات زندگی من بنا شده بعد به اون چهار مثالی که به دنبال خوشا حال ها میاد نگاه کنید و این تاکید رو ملاحظه کنید شما نمک این جهان هستید شما نور این جهان هستید شما شهری هستید که بر روی تپه ای بنا شده و نمیشه مخفیش کرد شما چراغی روی چراغدان هستید به کلمه هستید توجه کنید در هر چهار جمله توجه کنید عیسی به اون افراد نمیگه من به شما نور خواهم داد حالا برید پایین و بذارید نور شما بتابه نمیگه من به شما نمک خواهم داد و به اطراف مزه بدید عیسی گفته شما نمک هستید شما نور هستید ببینید وقتی شما واقعاً نقطه عطف یک مسیحی شدن رو درک کنید و چالش‌های مربوط به تأثیر شخصیت مسیحی بر جامعه رو درک کنید میبینید که هیچ راهی برای این نیست که شما راه حل و جواب او بشید و واقعاً چیزی بشید این چیزیه که با فیض خدا شما هستید اگر نیستی دو میگه نمکی که نمکی نباشه به چه درد میخوره او به شما میگه به هیچ دردی نمیخوره جز اینکه بیرون ریخته بشه و پایمال مردم بشه اعتقاد من تعالیم عیسی در اولین گرد همایی مسیحیان چالش بزرگی هست. وقتی که با دعا در این باب‌ها تأمل می‌کنید، مخصوصاً وقتی می‌بینید که عیسی درباره روابط و ادالتی که باید در این روابط به کار گرفته بشه صحبت می‌کنه، از خودتون باز هم بپرسید. کجا هستید؟ با برادرانتون چه وضعی دارید؟ با همسرتون در چه وضعی هستید؟ با دشمنان خودتون چه وضعی دارید؟ با همسایگانتون چه وضعیتی دارید؟ با رقیبانتون در چه وضعی هستید؟ با همکارانتون در چه وضعی هستید؟ آیا با فیض خدا ادالت در روابط شما حاکم هست؟ بعد وقتی به باب شش میرسید از خودتون بپرسید آیا من واقعا مقررات روحانی عمودی یک شاگرد رو در زندگی دارم؟ آیا من به خاطر چیزهایی که از مقررات مباشرت، انزبات دعایی و شرایط روزه و نگاه کردن به بالا یاد ام؟ انزباط ایسای مسیح و خدا رو در زندگیم دارم؟ آیا من ارزش‌های های عمودی خدا و مسیح رو در زندگیم دارم؟ همه ما ارزش‌هایی داریم. معنی لغوی ارزش اینه. کیفیت خاص چیزی که توسط اون ما تصمیم میگیریم که آیا اون چیز در زندگی ما ارزش کمتر یا بیشتری داره؟ برای ما سودمند هست یا نه؟ مهم هست یا نه؟ و بنابراین خوشایند ما هست یا نه؟ عرضش های شما چیه اگر به بیست سوالی که عیسی مسیح به طور مستقیم و غیر مستقیم در شش 6:19 تا 34 مطرح کرده نگاه کنید میبینید که عیسی بر چیزهایی تمرکز کرده که برای شما ارزش داره او به شما نشون میده که ارزش شما واقعا چی هستند و بعد به شما نشون میده که ارزش شما باید چه چیزهایی باشند وقتی به جایی رسیدید که فهمیدید ارزش شما چی باید باشند از خودتون بپرسید آیا من ارزش‌های مسیح رو در زندگی دارم؟ وقتی آخرین ما به سر کوه رو مطالعه می کنید از خودتون بپرسید. آیا من متعهد هستم که به درون نگاه کنم و اون چوب را از چشم خودم در بیارم؟ آیا من متعهدم که به بالا نگاه کنم، به طلبم، به و بکوبم تا آنکه به خدا برسم؟ آیا من متعهد هستم که به اطراف نگاه کنم و قانون طلایی رو به کار بگیرم؟ آیا من یکی از افراد بیشمار هستم؟ یا یکی از معدود کسان آیا من شاگرد دروغین هستم یا حقیقی آیا یکی از کسانی هستم که حرف میزنن یا یکی از کسانی که اراده خدا رو توسط عیسی مسیح عمل می این چالش اولین گرده همایی مسیحیان هست و هنوز هم چالش پیش روی من و شماست عزیزان این چالش بزرگیه چیزی که ما میگیم مهم نیست بلکه کاری که به خاطر مسیحی بودنمون می کنی اینه که زندگی شما ضمن راه رفتن با خداوند و ناجیمون عیسی مسیح تبدیل بشه. دایما اینکه اینه که زندگی شما خونواده شما و اجتماع شما رو تحت تاثیر قرار بده و به سوی خداوند بیاره. میخوام شما رو تشویق کنم نه تنها ترتیب بدید که در جلسه بعد همراه ما باشید بلکه از کسانی هم دعوت کنید که در مطالعه کلام خدا به ما بپیوندن تا برنامه بعدی فیض خدا زندگی شما رو دربر بگیره و شما رو حفظ کنه